به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان دفتر جهان نما دفتر جهان نما از افثانه است که درباره باره ابو علی سینا گفتهاند یا بهترین که گفته شود جای قهرمان داستان نام بو علی سینا را گذاردند یکی بود و یکی نبود در روزگاران قدیم توی دهی یک دهقانی بود زنی داشت به نام ستاره و پسری داشت به نام بوالی این پسر جز به خوندن و نوشتن به هیچ کاری دل نمیداد. داد هم پدر و مادر اندرزش میدادند که هر چیزی اندازه داره گوش نمی کرد و سر از روی دفتر بر نمی داشت هنوز بیست سال ازش نگذشته بود که پدرش مرد و مادر ازش نگهداری می کرد و خارش فقط مادر بود یه روز مادر بهش گفت ای فرزن چشم من داره کم کم از بینایی میفته و اگه خیلی زنده بمونم دو سه سال دیگه اینه که دلم میخواد تو رو داماد ببینم و همسری برات پیدا کنم هر کی رو که میخوای بگو برم و برات خواستگاری کنم بوالی گفت این دخترایی که من میبینم و میشناسم برای من ارزشی ندارن چرا که به اندازه‌ای که مورد نظر منه فهمیده نیستن. اگه میخوای من زن بگیرم و این آرزو از دلت در بیاد برو خاستگاری دختر پادشاه شهر که شنیدم هم خوشگیل و هم باهوش. مادر گفت فرزند پادشاه دخترشو به کسی میده که سرش به کلاش بیارزه و دارایی داشته باشه نه به تو؟ بو علی گفت دارای من از همه بیشتره دارایی اونها رو دوز میتونه ببره و روزی از بین میره ولی من هرچی که دارم کسی بهش دسترسی نداره و نمیتونه از من بگیره و اگه به کسیم ازش بدم اون زیادتر میشه نه کمتر به هر صورت گفتگو زیاد شد و طولانی و بو علی مادر رو به خونه و کاخ پادشاه به خاستگاری فرستاد در جلوی کاخ پادشاه توی باغچه دو تا تخت سنگ بود که هر کس با پادشاه کار داشت میرفت روی یکی از اونها نشست. یه تخت سنگ مال مردم بینوا و فقیر بود که روش نشستن و پادشاه به اونها پول میداد و بخشش میکرد یکی ام مال بزرگان شهر بود که با پادشاه کاری داشتن یا به خاستگاری دخترش میآمدند پیرزن رفت و روی این تخت سنگ دومی نشست پادشاه فکر کرد که پیرزن بی خود رو این تخت سنگ نشسته به پیشخدمتش گفت برو یه چیزی به این پیرزن بده و بگو دیگه روی این سنگ نشینه اگر چیزی میخواد روی اون یکی سنگ بشینه این سنگ مال بزرگاه و داراه که کاری دارن یا به خواستگاری دختر من اومدن؟ پیر زن اومد به خونه و اون که دیده بود و شنیده بود و به پسرش گفت. بو علی گفت چرا به پادشاه نگفتی که من برای گدایی نیومدم و به خواستگاری دخترت اومدم؟ مادر گفت روم نشد. بو علی گفت پاشو برو و بگو برای چی اومدم. دوباره پیرزن رفت و روی همون سنگی نشست که اون بار نشسته بود تا پادشاه دیدش آشفت و عصبانی شد به پیشخدمتش گفت مگه به این پیرزن دیروزی پول ندادی و نگفتی روی این سنگ نشینه پیش خدمت گفت چرا گفتم پادشاه گفت پس برو ببین چرا اینجا نشسته پیش خدمت اومد بیرون و, و به پیر زن هرچی که بار اول پادشاه گفته بود و دوباره گفت. پیرزن گفت من فقیر و بینوان نیستم به خواستگاری دختر پادشاه برای پسرم اومدم تا پادشا اینو شنید. داد و فریاد راه انداخت که چه روزگار بدی شده هر کس و ناکسی برای هر بی سر و پای به خاستگاری پیش من میاد به پیش خدمتاش گفت برید و این پیرزن رو بیرون کنید و بزنیدش تا دیگه پر روی نکنه وزیر گفت این کارو نکن زدن پیرزن ناتوان شگون نداره یه سنگی جلوش بنداز که نتونه برداره پادشاه قبول کرد. پیرزن آورد نزد خودش و گفت من دخترم رو به کسی میدم که از همه داناتر باشه و آسمون رو به زمین بدوزه و از دفتر جهان نما با خبر باشه. پیرزن اومد و اینها رو به پسرش گفت. بو علی گفت برو بگو بعد از شهل روز آسمان رو به زمین میدوزم و با دفتر جهان نما به پیشگاهت میام. مادر گفت گرفتم که دفتر جهان نما رو هم بتونی بیاری و آسمون رو هم به زمین بدوزی از کجا پول میاری نبا یه مش پول تو جیبت باشه که نقل و نباتی بخری و سر دختر بریزی بو علی گفت پیدا میکنم فردای اون روز بو علی مسیر دروازه شهر رو گرفت و بیرون رفت چند شبانه روز توراه بود تا رسید به دامنه یک کوه. از قبل می دونست که در بالای این کوه دیو دیومردیه که در هر چیزی استاده و همه فن حریفه و دفتر جهان نمو هم پیششه، رفت بالای کوه. دیو دیومرد زیر درختی دراز کشیده بود. تا چشمش به بوالی خور پرسید اومدی اینجا چکار کنی؟ بو علی گفت راه رو گم کردم تشنو و گروسنم از پایین این کوه و درخت رو دیدم اومدم آبی بخورم و نائی بگیرم و جونی بگیرم و بعدم برم دیو مرد باور کرد گفت خیلی خوب امشب و اینجا باشو فردا برو بو علی قبول کرد و شب و اونجا خوابی روز که شد دیو مرد گفت من روزها میخوابم تو اگه میخوای بری برو؟ اگرم میخوای اینجا بمونی بمون؟ بو علی گفت امروز رو میمونم و فردا میرم. دیو مرد خابید. بو علی اومد توی اتاق و دفتر جهان نما رو از بالای سر دیو مرد برداشت. توی اون دفتر چیزها دید و افسونهای رو خوند. فوری یکی از اون افسونها رو به کار بست و به یک چشم به هم زدن خودشو به بیرون دروازه شهر رسوند. در این میان دیو مرد بیدار شد. دفترشو ندید. چشمی به دشت انداختید بو علی نیست. فهمید که افسونی از اون دفتر پیدا کرده و خودشو به شهر رسونده. دیو اومد به شهر دنبال بو علی. بو علی هم یه راست به خونه اومد و به مادرش گفت ای مادر بیکار نشین. پاشو من یه آهوی قشنگی میشم تو منو ببر در خونه پادشاه پسر پادشاه که منو ببینه منو میخواد بعد تو منو به 500 اشرفی بفروش برای خرید نقل و نبات و پول سر دختر مادر پاشو دو همین کارو کرد یه میدون مونده بود که به کاخ پادشاه برسه پسر پادشاه آهو رو دید از مادر بو علی پرسید این آهو رو چند میفروشی؟ مادر گفت 500 رفی. پسر بیدرنگ پولو داد و آهو رو خرید و به یکی از نوکرهاش گفت پنج سیر کشمیش بخر که شنیدم آهو کشمشو دوست داره. نوکر هم خرید. پسر پادشاه توی جیبش ریخت و مشت مشت دهن آهو میذاشت. حالا بشنوید از دیو مرد اومد توی شهر رو این و رو اون و رو چشم اینداخت تا بو علی رو در هر لباسی که هست و هر جایی که هست پیدا کنه. رسید به کوچه یک کاخ پادشاه، تا بو علی رو از دور دید شناخت. بو علی هم رو به پشت سر کرد دید دیومرد داره میاد و تا بهش برسه اونو میزندش. به زور سرشو کرد به بهانه او کشمیش خوردن سرشو کرد تو جیب پسر پادشاه. کم کم گردن و دستها و شکم و پاها و دومشم رفت تو جیب پسر پادشاه. پسر پادشا دست پاچه شد انگوش به دهن مون چرا اینجوری شد؟ که یه دفعه دید از جیبش گنجیش که پرید و رفت دیو مرد سرگردون مون که بو علی کجا رفت چجور پیداش کنه؟ بنابراین دیو مرد کلاقی شد و به هوا پرید بالای درختا که ببینه که بو علی تو کدوم خونه است گنجش که یعنی بو علی تا سر دیوار خونه خودشون رسید چرخی خورد و از تو این چرخ مثل خود بو علی پایین رفت فوری دفتر جهان رو زیر بغلش گرفت و برای پادشاه برد پادشاه تا دفترو دید تجرب کرد از کجا و چیجوری رو به دست آورده اینکه چطور اونو به دست آورده رو از بو علی پرسید و بو علی هم همش رو تعریف کرد پادشاه گفت به تو دختر ندم به کی بدم جشن به پا کردند هفت شبانه روز شهر رو تزین کردن و همه مردم شادی ها کردند و دختر رو به بو علی دادن دیو مردم که در قالب یک کلاق رفته بود وقتی دید دفتر جهان نمازیر بقل بو علیه و همیشه باهاش هست دیگه ناامید شد که بتونه کاری بکنه از جلد کلاق از اون شکل و قالب کلاق دیگه بیرون نیومد و از اون روز خودش و فرزندانش پشت بام خونه ها و بالای درختا. دنبال دفتر جهان نما می گردن و قار قار و به جایی نمیرسند و با اونکه که ما به سر رسید کلاغه هنوز به جایی نرسید دفتر جهان نما داستانهای از بو علی سینا صفحه هفتاد گردآورنده فضل الله محتدی صبحی انتشارات جامی چاپ دوم ۳۷ و, سی سد و, هفتاد و چهار. شنوندگان عزیزم، امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و با، لذت برده باشید و منو در داستان بعدی هم همراهی کنید. همه شما رو به خدای مهربون میسپورم سفر به دنیای پر رمز راز. افسانهها، ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادویی قصر های باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه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 همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانهای صوتی عطسین مهران دوستی